بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندگی مهربان. صبح اسم ربک الاعلا نام پرور کاری بلند مرتبه اسراء با پاکی ات کرد. ال الذي قلق فسوى همان خداوندی که آفرید و منسم کرد. والذي قدر همان و همان ذاتی که تقدیل کرد و هداویت فرمید و انکه چراهگاه را بوجود آبد فجعاله حسین احوه سپس ان را خشک و سیاه قرار داد سنقرئک فَلَا تَنْسَ ما بهزودی بر تو قرائت میکنیم با هرگز فراموش نخواهی کرد لا ما شاء الله إنه الجهر وما يخفى. مگر آنچه را خدا بخواهد که او بیگمان آشکار و پنهان را می داند. و نیست او کلیسراء. و ما ترا برای انجام هر کار خیر آماده می‌بینیم. فداکر این نفعات ذکر. پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد. تیذکر می‌آخش. و بذودی آنها که از خدا می‌تاند متذکر می‌شوند. و یتجنبها الاشقا اما بدبخترین افتاد از آن دوری کتینا الَّذِي يَصْلَنَّا وَلْكُبِرَا همان کسی که در آتش بزارد باغت می شود ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا سپس در آن آتش نمیمیرد. و نه زنده می شود قد افلح من تذکر مسلمن زستگار می شود سسی که خود را تذکر کند و ذکر اسم ربی فصل و نام پردارگارش را بیاد آورد و نماز بخاند بل تقصیرون الحیات الدنیا بلکه شما حیات دنیا را مقدم می‌داری و و در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است ان ها ذلک الصحف مصدما این دستورات در, در کتب آسمانی پیشین آمده است ذو القرنین و موسا و